اوولوی قنی، بیست سفر 643 زندگیت بلا نقصان کامل و بی کم و کاست است یا چونین تصور می کنی. با عادتها کنار میآیی و اسیر تکرارها میشوی گمان می کنی همانطور که تا امروز زندگی کرده ای، از این به بعد هم زندگی خواهی کرد بعد در لحظه ای نامنتظر کسی میآید. شبیه هیچ کس دیگر خودت را در آینه این انسان نو میبینی ای سهرامیز است او نه آنچه داری بل آنچه نداری آن را نشانت میدهد و تو میفهمی که سالهای سال در اصل همیشه با نوعی احساس نقصان زندگی کرده ای. و در حسرت چیزی ناشناخته بودی حقیقت مثل سیلی به صورتت می‌خورد این شخص که خلع درونت را نشانت میدهد ممکن است پیری، استادی، دوستی، رفیقی، همسری یا گاه کودکی باشد مهم این است روحی را بیابی که کاملت می‌کند همه پیامبران این پند را دادند. کسی را پیدا کن که خودت را در آینه وجودش ببینی. آن آینه برای من شمس است. انسان سالها میکوشد و قاموس خودش را می آفریند. برای هر مفهومی که به نظرش مهم است تعریفی می آبد. حقیقت، سعادت، زیبایی، افتخار، اعتبار، صداقت و غیره در های زندگی قاموس شخصیت را باز می‌کنی و می‌خوانی دیگر نمی‌توانی در تعریف‌هایی که مدت‌ها قبل یافده ای به آسانی شک کنی اما روزی آن غریبه می‌آید و قاموس گرانبهایت را میگیرد و به گوشی پرت میکند. میگوید همه تعریفهایی که تا امروز بی قید و شرط پذیروفده ای از نو نوشته میشود. زمان آن فرا رسیده که همه دانستهایت را فراموش کنی. این است کاری که شمس با من کرد. هر دانشی را که در درستی شک نداشتم پاک کرد من را که استاد بودم به جایگاه طلبگی نشاند وقتی کسی را اینقدر دوست داشته باشی دلت میخواهد خانواده‌ات دوستانت نزدیکانت نیز در این محبت سهیم شوند و او را دوست داشته باشم میخواهی احساست را درک کنند و اگر درکت نکنند، حیرت می کنی، آزرده می چه کنم تا خانواده ام شمس را همانطور ببینند که من میبینم. آن را که در وصف نمی گنجد مگر میتوان وصف کرد. شمس دریای رحمتم خورشید لطفم است. عمق دوستی من مانند قراعت چهارم قرآن است یا درونش هستی از خود بی خود می شوی و می روی یا بیرونش هستی و قادر نیستی بفهمی به, به چه می ماند متاسفانه خیلیها ها بیان که از ماجرا خبر داشته باشند درباره دیگران قضاوت می کنند. به نظر آنها شمس درویشی آسی است، سرکش است و کل خراب است معلوم نیست چه کار میخواهد بکند خلاصه آدمی غیر قابل اعتماد است آدمهایی که به دروغ و دوز و کلک عادت كردهاند تا به تحمل زبان تند و لحجه سریح شمس را ندارند جایی که دیگران ریاکارانه ادب را رعایت می کنند، شمس لجوجانه پتهشان را روی آب می‌ریزند هر حرفی داشته باشد تو روی آدم میگوید. ندیدم پشت سر کسی حرف بزند از نظر من شمس ظهور تلسمی است که کائنات را میچرخاند دل شمس به کاروان سرا میماند. ماند. هرچه بگردی تمام نمی شود. در حجرهایش مسافران مفلوک منزل کردهاند. او کسی را از خود نمی راند. من در وجود شمس همراز و آینه روهم را یافتم. چون این ملاقاتی در زندگی یک بار اتفاق می افتد. سی و هفت سال یک بار. همه می‌پرسند چرا شمس را اینقدر دوست دارم. چطور می‌توانم جواب بدهم؟ هر کس این سوال را بکند پیداست نمی‌فهمد. هر کس بفهمد این سوال را نمی‌کند. حکایت خلیفه هارون رشید به یادم افتاد. خلیفه که شنیده بود مجنون لیلی را دیوانوار دوست دارد کنجکاف شده بود بداند لیلی چگونه دختری است. با خود می گفت لیلی حتما زن بسیار زیبایی است که مجنون را این طور مست و دیوانه کرده. لابد از دیگر زنان بسی زیباتر و جساب تر است. رفته رفته کنجکاوی بیشتر می شود و می خواهد یک بار هم که شده لیلی را به چشم خود ببیند سرانجام لیلی را می یابند و به قصر خلیفه می آورند در آنجا لباسی زیبا به تنش می کنند و زکش می کنند و به حضور خلیفه می آورندش اما همین که لیلی روبندش را کنار می زند خلیفه هارون رشید سرخورده می شود گمان مبرید که لیلی زشت بوده یا عیب و ایرادی داشته یا اینکه پیر بوده اما راستش جذابیت ای نداشته او هم مثل بیشمار زن دیگر موجودی فانی بوده با نقصانهای خودش خلیفه سرخوردگیش را پنهان نمی کنن. لیلی لیلی که میگویند این است کجای این مجنون را خاطرخواه خودش کرده؟ زنی این معمولی است با زنهای دیگر چه فرقی دارد؟ لیلی این را که میشنود می, شنود می خندد و در جواب میگوید؟ بله من لیلیام. اما تو مجنون نیستی، باید مرا با چشم مجنون هم می دیدی. خیال نکن طور دیگری به رازی که عشق می نامندش می توانی برسی خیلی خوب، چیزی را که خلیفه هارون رشید نمی تواند درک کند، خانواده دوستانم، طلبه هایم می توانند درک کنند؟ چطور میتوانم شمس را برای کسانی توصیف کنم که قادر نیستند ببینند او چه انسان است؟ چه باید بکنم تا بفهمند برای دیدن شمس تبریزی لازم است با چشم مجنون نگاه کنند، نه با چشمی که از قبل داوری خود را کرده است؟ عشق در نظر کسی که آشق نیست، کلمه خشک و توخالی است. نیمی فریب، نیمی سفسته. آنکه که آشق نیست، عشق را نمیتواند درک کند. آنکه که آشق است، نمیتواند وصف کند. در این صورت، در جایی که کلمه ها توان ندارند، عشق را مگر میتوان در قالب سخن ریخت پیش از این به من می میگفتند صراف سخن استاد خطابه سرور حروف قواس دریای معنا اوضاع غریبی است من که به آسانی مقصودم را بیان می کردم و مرامم را می نوشتم من که به معظب و کتاب و نطق عادت داشتم دیگر به کلمه ها اعتماد ندارم